سلام آقا لطفاً به من یک دسته گل سرخ بدهید سلام چه رنگی را دوست دارید؟ چه رنگی؟ گلهای سرخ آنجاست سمت چپ بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است چند شاخه گل می خواهید؟ پنج شاخه کافی است. امروز خیلی باران می آید. بله، از صبح تا الان باران می آید. هوا سرد است. گل زنبق هم می بله، لطفا دو شاخه گل زنبق هم بدهید. حتماً برای شما دو شاخه گل زنبق هم می‌گذارم.